به خدا همشه طاقت دوری تو ندارم میخوام ببینمت ولی پول تو عشقم. دست بکش رو موی من دیگه نیستم بهت بگم مچه پر روی من دیگه نیستم بهت بگم تکی نرو جای دیگه نیستم با اون ببینم ات طور جای دیگه نیستم غانم کنی بگی یاش نمونه میگفت با دوستمم و پیش دوستاش نبودش دیگه نیستم تو پنجه سو سوال کنم نمیگم دوست دارم که بعدش بخوام پاک کنم دیگه نیستم دروغ بگی به هم همیشه هم بازم مونی همیش هم گفتی نمیدونم دوستم داری یا نه من دوستت دارم چیزیه که نمیدونیش راست یادتو گفتی مثل تو دارم پره بشین تا آخر شب به شرانول بده میخوای بری باشه برو قبول ولی فقط بدون از چی برام نموند خدا را شک همیشه داشتم که نگم هیچ وقت به دست کسی نمون تو فروزی که ازت چند تا عکس مونده لعنت به منی که اینجا بی کس مونده وای به روزایی که فکر میکردم مقصرم میخوای برگردی دیگه برات متصفم تو که بهم گفتی خوشحالی از رفتنت نفهمیدی سر حوست که رفتنت بگو چی شده ها چرا یادم کردی این خوشتت به سر نبودش عشق شما که پایدار بودی تو چرا خسته شدی نکنه میخواستتت فقط برا رفت کتی میشه بگید چطه از من چی میخوای تحرف بزن چیه چرا درگیر صدات صداد بودم نفهمیدم گفتی میری از صدام بدت میمد رو آهنگم قفلی میری حرفای آخرمه تا صبح پلیش کن این جهنم منه تو به کن تو هوا باش منم آدم میشم تو سیب طرف گذشته های آدم میرن نمیگم شیرین بودی من افرهاد بودم ولی شیرین بودی که در گیر حرفت بودم تو لیلی بودی درگیر حرفت مجنونم کرد تو ظرفو شکوندی و عشق تزیونم رفت من و تو قصه نبودیم من فقط قصه خوردم قهرمان داستانم بودم با حرفت میموردم دیگه آخراشه با خراش زندگیمو میگم من که بهت گفتم سرت تو زندگیمو میدم حرفامو شنیدی میشه از یادت نره بعد بودی خوبت کردم شدم آدم بده خوبت کردم شدم آدم بده شدی اکسای شاخ میگیری میبینم میسازیشو ازش ساخت میگیری تو توقت شده؟ بام یا درکه اونا به هدوی او دادن تو فکر کردی ملکه ای هر جا میری مهم نی عرفه مردم جواب من چی میشه جواب اونم سک دوبایه ببخشی دلالم که گله میشه هیچ رختری با چلیزا که زن نمیشه میگفتی با تو نه بارون بیاد آروم میشم میگفتم آروم باش برات بارون بشم خودتو میگیری تا جایی اسمم بیاد نشستی تا ب ده بازی شد تو رفتی من مردم من یه دیوونم علاجی نیصف زردم ولی هنوز تو شکرم که چلا از تو دروغ میشیدم و این همه رو دست خوردم <تصفيق> بازم رفتی نموندی که بازم نشناختی ولی بازم معرفی میکنم ادرین اما میدونی که ادرین Sen zimë... Edrinë... Mersi rekord...